باعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و السلام على نبينا وآله الطاهرين ما مبحث علم معاني در این ترم و علم بیان رو در ترم قبل خوندیم و اگر مستحضر باشید گفتیم که بلاغت عبارت است از کلام صحیح و فسیحی که مطابق با مختزای حال مخاطب و گفتیم ما کلام صحیح و فسیح رو در علم بیان مورد بحث قرار میدیم و مطابقت با مختزای حال رو در علم معانی اون خوب گوی و گذیدگوی خوبش یعنی همون صحیح و فسیل گذیدگویش مطابق مختزای این بلاقت رو تشکیل میده یعنی زیبایی ذاتی سخن یعنی پنجاه درصد این پنجاه درصد خب اگر بلاقت این مرحله رو به اتمامه دیگه علم بدیل چیه علم بدی خارج از بلاغته یعنی بعد از اینکه بلاغت تشکیل شد و کلام نمره قبولی گرفت و بلیق شد اون موقع علم بدی میگه این رو به من بده تا من بتوانم اون رو آرایشش کنم به موارد علم بدی میگن آرایه های بدی بدیعی یعنی محسنات محسنات یعنی تحسین کنندگان زیبا کنندگان یعنی كلام بلیغ است نمره قبولی گرفته صحیح و فصیح مطابق مقتضای حال حالا ما میایم، او رو به واسطه آرایه‌های های علم بدی آرایشش شش میکنیم زیباترش میکنیم اگر یادتون باشون او حوائل بحث بلاغت من میگفتم گفتم مثل این میمونه که ما دارو رو داریم یعنی تشخیص دادیم که این دارو این خصوصیات رو داره شفا بخش و میدانیم که این دارو برای کدوم مریض شفا بخشه لذا اگر این دارو رو که داروی صد در صد از هیچ آرزه ای نداره به مریض مورد نظر دادیم بخوره خوب میشه خب پس ما میشیم پزشک حاضر میشیم بلیغ و کار ما هم درست نمره قبولید اما یادتون باشه میگفتیم که یک کسی میاد میگه این دارو رو من میتونم با توجه به اینکه داروست قشنگش بکنم یعنی چطوری یعنی مثلا کپسول درست کنم شراب بذارید توی کپسول ایشون بخوره بعد شیره معده اون اونو بازش بکنه تو معده‌اش باز بشه تو کامش باز نشه که ترخ باشه و بد مزه خوب این هیچ کاری نکرده نسبت به دارو اما چقدر مقبولیتش بیشتر شده اون یکی میگه من میتونم اینو منجمدش کنم به شکل قرص بشه یه احسانس هم بهش بزنم و خوشبو باشه که طرف راحت بتونه این رو استفاده کن باز هم کاری نکرده در اصل این که دارون چیزی برای هسته اما خیلی مقبول شده اون مثل علم بدیه ما اینها رو خدمت شما گفتیم حالا وارد علم بدی میخوایم بشین علم بدی در واقع که خارج از بلاغت دو نوع آرایه داره یه نوع از آرایه ها آرایه های لفظیه یعنی ظاهر لفظ رو قشنگ میکنه موسیقی سخن ایجاد میکنه کلام رو زیبا میکنه از جهات ظاهری لفظی یکم آرایه های معنویه معنا رو قشنگ میکنه تو معنا تأثیر میذاره چون کلام یه لفظ دارد یه معنا بعضی از آراهای لفظش رو غشنگ میکنه بعضی از آراهای ها معناش به دو دسته محسنات لفظیه و محسنات معنویه تقسیم میشه بعد یادتون باشه اونی که محسنات لفظیه است و اونی که معسنات معنوی است ممکنه اون لفظیه یه ذره هم در معنا تاثیر بش bagه اون هم قشنگ کنه یا اونی که معنویه است یک ذره در لفظ هم تاثیر کنه <تصفح> قشنگش کنه اما با توجه به اینکه که اصل تاثیر اون در لفظ است بهش میگیم محسنات لفظیه اونی که اصل تاثیرش در معناست. است بهش میگین محسناتếu معنوی. حالا محسنات لفظیه چند تاست محسنات معنویه چند تاست کتب مختلفه یعنی کتب بلاغی در این زمینه مختلفه بعضی ها مثل ابو هلال عسگری تا 120 چند تا سمردن بعضی ها مثل این کتاب ما 10 تا آوردن. بعضی ها مثل کتاب مختصر و متول که جز کتب اصلی بلاقات آی خطیب و تفتازانی سی تا ذکر کرده به نظر میاد که اونی که خطیب ذکر کرده و تفتازانی شهر کرده تو مختصر و متول اصله یعنی سی تا که ده تاش محسنه لفظیه است و بیست تاش محسنه معنه اینی که کتاب ما ذکر کرده خب چون کتاب اوله اومده اون مهماش رو ذکر کرده ده تا سه تا از محسنات لفظی هفت تا از محسنات معنوی خب اون که تعداد زیادی آورده چی؟ ببینید محسنات لفظیه و معنویه ما اونی رو محسن می دانیم. اونی رو محسنه می دانیم. که که زوق سلیم یعنی بشر با زوق خودش اون را قبول کرده باشه زوق سلیم پذیرفته باشه یعنی هر کجا برید بگن مثلا جناس بگن تباغ بگن تضاد قابل قبوله پذیرفته است درست شو این محسنات لفظی و معنوی این طوری اونایی رو که آقای تفتازانی جمع کرده اما آقای ابو هلال و این کتاب ما چطوره ببینید یه مثال بزنم محسنات لفظی و معنویه مثل اسباب زینت مثل چیزایی که وسائل آرایش و زینت انسانه مثلا الانگو، گوشواره گردنبند دستبند خب اینها محسناتند دیگه یه کسی که خود زیبایی دارد اینها اسباب زیبا جلوه کردن اون میشن آقای تفتازانی اومده اونهایی رو که اسباب زینت است نزد همه قبول دارن جمع کرده مثلا انگشتر الانگو دستبند گردنبند گوشواره اینا چیزایی که همه ملل از اول تا الان جزء محسناتشون قبول دارن اینارو. رو کتاب ما که اومده کمش کرده اومده اصلیاشو گفته مثلا انگشترو گفته گردنبندو بند گفته مثلا با گوشواره اصلی گفته اونا که خیلی خیلی هست آقای ابو هلال امثال اون که زیاد این مبحث رو اضافه کردن دو تا اتفاق افتاده یکی اینکه اومدن انواع یه محسنه رو هر کدومش رو یک قسم قرار دادن مثلا علنگو چند نوع ممکنه باشه گردنبند چند نوع ممکنه باشه دستبند چند نم باشه انگشتم هم چند نوع ممکنه. حلقه باشه, باشه. هم با انگشت هم نه هم انگشت به انگشت می. اومدن انواع یک چیز رو هر کدومش رو یه نوع حساب کردن به ذات اعداد زیاد شد این یک چیز از دلایلش. دلیل دوم تکرار. اومدن بعضی چیزها رو تکتار کردن مثلا یه گفته دراز شده مثلا دوباره باز گفته علمدار خب اینم سعه دلیل سفوم که عمده هستش اینه اومدن بعضی از محسناتی رو گفتند بعضی از محسناتی که اونها نزد بعضی از مردم محسن است. همه اون رو به عنوان محسنه نمیدونه مثل که ممکنه در هندوستان یا در نمیدونم قبائل افریقا یک کسی اگه یه کلاه بوغی یه متری هم بذاره رو سرش دراز این جز محسنه ده ولی جای دیگه بگذاری میخندن. اما انگشتر نه اینطور طور نیزه. یا کسی مثلا فرض بیاد که <تصفح> لپش رو سراخ کنه حلقه چیزی بهش بندازه مثل مثلا شلوار و لباس قاره پوشیدن اونی که محسنهی نیستش که همه قبولانا یه تایفه یه جایی به یه دلیلی اومدن یه همشین کاری کرد ممانم که جزو محسنهات سا محسنه اونی که زوغ اون رو بپذیری و با قشنگی به کی نشون بدی تو طول تاریخ بگم بله این قشنگی پس امثال ابو هلال یا به واسطه تکرار یا به واسطه شمردن انواع یک شی یک محسنه به عنوان اقسام اون یا به خاطر اینکه بعضی چیزها رو محسنه دانستند که اونها واقعا محسنه اصلی نیستند، محسنه اصلی نیستند. محسنه اصلی اونه که زوغ بشر اون رو در تخت حج شرائطی میپذیرند. و هیچ نیستش که بگه نه این قشنگ است. پر کجا میرید تو طول تاریخ میبینید که اینها دستبند به دستشون داشتند و این دستبند دست کردن یا گردم بندن قابل قبول بوده خب، پس بنابراین این رو دانستیم کتاب ما هم ده تا رو معرفی کرده سه تا محسنه لفظی و هفت تا محسنه معنوی اول محسنات لفظی رو میگه چون تعدادش کمتره زودتر تمام میشه نگاه کنید بخونم توضیح دادم خیلی میگه علم البدی حرف فی ما سابقن و علم البیان وسیلتن الی تعدیه معنا به اسالیب و عدتن بین تشبیه و مجازن و کنایه فهمیدیم که علم بیان به ما راه رسوندن معنا رو یاد میده به طرق مختلف حالا تشبیه و امثالش مجاز و و کنایه و امثال و اقصالش و عرفتن ندرسته علم معانی، تو این و علا کلام مطابقند به مختزای علم معانی هم به ما یاد میده که کلام خود رو مطابق مختزای حال کنیم اما ما بلاغی، و به قرز بلاغی بلاقی یوف هم و من و ما تو بهیمن این قراریم با این که این کلام وفا میکنه به قرز بلاغی که ما داریم قراز ما رو وقتی این طور باشه که این قراز بلاغی یو خمو زمنن من سیاقی این قراز بلاغی از سیاقش فرمی نسف فعل امر آورده دلالت بر عمل نمی دلالت بر مثلا تهدید میکنه که از زمنش برده شنان می و ما یو تو به من قرائن هم. حالا اینو یا از سیاق می یا از آنچه که به او احاط دار از قرائن ما با قرائن این مسائل رو درک میکنه. خود خب این دانسته شد حالا میگه و بناکه ناحیه ثنخرا بعد از این بلاغت ذاتی ناحیه دیگری هست من نواهل بلاغت لا تتناول و مباحث علم بیان که نه شامل مباحث علم بیانه ولا تنظرو فی مسائل علم المعانی و نه موضوعیتی در علم معانی داره نه از قسم بیان نه از قسم بدی ولكن هاد راست نه تعدد تأین تزیین علفاز قبل معانی تعلوان بدیهی من الجمال نفسی قبل معنی ولی این علم بدیهی یه تحقیقی درسی است که متو تجاوز نمیکنه از آراشه علفاز یا معانی اونم به شکل های زیبا از جمال نفسی و معنوی. یعنی میاد با جمال لفظی و معنوی کلام بلاغی رو عشنگی شکنه. و یوسن با عل علم الجام علیه مباحث به علم بدی. نامیده میشه اون علمی که این مباحث رو در برگرفته علم بدیه. آ، یعنی علمی که زیباسازی کلام رو داره. و هو یشتم که کما اشدنا علی محاسنات نفسیه و علی محاسنات معنویه و همینطور شامل همونطور که گفتیم به محاسنات و انا ذاکرون الک من كل قسم طرفا و ما اینجا ذکر میکنیم برای تو از هر قسمی گوشه ای رو گفتیم از ده تای علم بدی در محاسنات نفسیه سه تاشو میگه و از 20 تا محسنات معنوی هفت تا میگه یعنی در واقع سی درصد رو از هر کلمه بیان یک سهم ال محسنات اللفظیه جناس جناس مصدر دوم جان است ایو جان سومو جان استن و, و جناسان یعنی هم شکلی هم جنسی درست جناس نگاه کنید نگاه کنید جناس توی قاعده درست قاعده رو بخونن میفهمید یعنی چی میگه الجناس و الفلام داره یعنی اون هم جنسی که مجانستی که در علم بدی امد نظره عبارت است, است. انیتشا به هم لفظان این که دو تا لفظ با هم مشابه باشد انیتشا به ها فن در تلفظ ببینید این مهم ها در نطق با هم یکیه درست شد انیتشا به لفظان فن و یختلف ها فلما ولی با هم اختلاف داشته باشد در معنا. دو لفظ اومده در لفظ یکی هستن در معنا متفابطن درست شد؟ ببینید اینکه که وقتا انیتشا هم دو تا لفظ باشن که ظاهرشون یکیه نه؟ یه شکل، اما معناشون یکی نیست ما میبینیم این به یه معناشون به یه معنی لفظ مشتری که هم داریم این که دو تا باشند دلیل بلید نمیشه که مثلا اگه سه تا بودن دیگه جناس نیست ولی معمولا جناس ها 95 در سالشون بین دو لفظه دو لفظ گفته شکلشون یکیه معنی. ولی اگه مثلا سه تا باشن اشکالی نداره اونم جناسه مثل اینکه یکی بگه که از خونه اومدم بیرون رفتم شیر خریدم و بعد جنگل رفتم شیر دیدم حالا مثال و بعد خونه اومدم دوباره دیدم شیر چکه میکنه بستمش اول لفظ شیر ستا شد. شیر خوراکی شیر درنده شیر آب جناس درست شد آن سه تاست اشکالی تو این مطلب ما نداریم اگه گفتیم دوتا این حصر نیست چون 95 درصد معمولا دوتاییه ما این رو بلان کرد این بحث رو داشته باشیم. حالا جناس تام کدومه؟ جناس تام اونیه که این دوتا کلمه در چهار تا چیز با هم یکی باشه در چهار تا چیز یک یک نو حروف نو حروفشون یکیه شیر شیر شین و یا و را دو شکل حروف شکل یعنی حرکت حرکت رو سکون شو. شکل حروف حرکت و سکر. سه تعداد حروف اون سه تا حرف چهار ترتیب اون حروف شین اول یا دوم راست، یعنی در جميع شکل یعنی 100 درصد کپیه درُشُ نوع حروف حرکات حروف تعداد حروف و بگید ترتیب حروف یکی هستن این میشه به گوه جناس تام یعنی ست, ست الان توی امثله نگاه کنید خداوند تعالی در قرآن میگه یوم تقوم و ساعت یقسم المجرمون ما لبسو غیر ساعتن یوم تقوم و ساعت. روزی که قیام کند قیامت قیامت مش. از ساعت یعنی اون لحظه یعنی قیامت اسم قیامتیش از است. میگه روزی که قیامت به پار بشه یعنی متعلق و یقسمون یقسمون مجرمون مجرمین قسم میخورن ما لبسو غیر ساعته، میگم بابا ما تو دنیا نبودیم جز یک وقت کم یه لحظه ما تو دنیا یه ساعتی لحظه‌ای بیشتر نبودیم حالا اومدیم اینجا شما ما رو خیفت کردید که برو جهنم اونم تو آخر اوم. چرا اینها میگن ما تو دنیا لحظه‌ای بیشتر نبودیم به دلیل اینکه وقتی مقایسه میکنن زمانی که تو این دنیا بودند با زمانی که در برزخ بودند و زمانی که در قیامت وایستده بودن مبینن این یه هم محاسبه نمیشه چون میگن روز قیامت هر روزش معادل پنجاه هزار سال این دنیاست حالا یه نفس ست کرده باشه نسبت به پنجاه هزار سال چقدر میشه یک پونسدوم. نسبت به یک روزش پس این اونجا اینه. این ساعت اول به معنای قیامته ساعت دوم به معنای زمانه زمان کم محدود درست شد یه نکته اینجا داره ببینید الفلام مثل از ساعت مثل ساعت اینا خارج از کلمه است نظر ما اینو ساعت و کلمه رو در نظر میگیریم ملاک نیست درسته از ساعت و ساعه فرق داره یکی تنوین داره یکی الفلام داره ولی خود کلمه یه شکل درست شد اونها خارجن اونها ملاک بگید نیستند تنوین و الفلام جزء کلمه در این بحث بدی به حساب نیست و قالش شاعر شاعر اینطور گفته فیرس هاصدقیر اسم و یحیا. در یک بچه کوچیکی که نامش یحیا بوده در مورد او اینطوری گفته.شاال میگه و صی تو یحیا وان و نامیدم او رو یحیا، اونو یحیا گفتم، اسمشو گذاشتم آقا یحیا. بچه؟ شو. چرا؟ لی یا برای اینکه زنده بمونه برای اینکه بگید زنده بماند به امید اینکه خدا بهش فال نیک زدم که انشالله میمونه اسمش گذاشتم یحییاد یعنی فعل مزاره شد اسمو یعنی آقا یحیا چرا اسمشو رو گذاشتم یحیا برای اینکه فال نیک بزنم که انشالله زنده اما فنم یکونه الالت امر الله فی حسابی ولی نبود برای رد بازگرداندن فرمان الهی در مورد او که خدا گفته کل نفس انزهای قتل مب لکل اجلون مسما هر کسی مرگی دارد میگه نبود برای رد فرمان خدا در مورد او سبیلی راه سبیل نکرست یعنی نگه شواهی نبود که فرمان خدا در مورد اون که گفته بمیر نشه ردش کرد من تدبیر کردم فعال نیکم زدم اسمشو گذاشتم آقا یهیه برای زنده بمونه ولی خدا نخست و کسی هم نمیتونه امر خدا رو دیگه پس بزنیم امر خدا رو کنار الان نگاه کنیم یهیه یهیه اولا یهیه موقعی که اسم باشه یهیی نوشته میشه در شو موقعی که فعل باشه یحیی با الف با الف نوشته میشه اینجا میبینید که رسم الخط رعایت کرده یکی فعله یکی اسم فعله با الف کشیده نوشته شده و اسم با یایی که با الف محذور است فرق این دوتا مثال هر دو هر دو جناس تامند اما یکیش مول خودمون هر دو اسمند مماسلند درستو ساعه و ساعه یکیش یکیش اسم یکیش فعل دیتمماسلند هم شکل بگید مثلا دو جنسند یکی اسم یحیی اسم علمو آقا یحیی یکی هم یحیی یعنی فعل مزاره خب این تام ناقص چیه ناقص عبارت هست یعنی تام یعنی ناقص هم بهش این که در یکی از این چهارتا در یکی ها فقط نه دوتا یکیش در یکی از این چهارتا با هم بگید فرقش بشه مثلا نوع حروف عدد حروف شکل حروف مشخص شد حرکات ببینید در نوع حروف هم با هم فرق داشته در یک حرف ها یعنی مثلا جوری نباشه که فرض فرمایید که مثلا ضربه با قتل خب بگیم نوع حروفشون با هم یکیه مشخص. یکیش نگاه کنید غیر تام و هو مختلف مختلف اللفظان دو لفظ درش با هم مختلفن فی واحد من الامور المتقدمه در یکی از این چاردای گذشته یعنی اگر در نوع حروف یه حرفش اگر در حرکات و خب حرکات فرق کنه مثلا قتل با قتل لوط یا قتلون با یقتلون مثلا عددش متخاص شده نه یک دو تا اینجوری فرق پرتی بشه که خب مشخص دیگه پس و پیش بشه پس فقط در نوع حروف در یه حرفشون با هم دیگه فرق دارم خب حالا اگر این رو دونستیم که در یکی بیاییم با هم بخونیمش نگاه کنید مثال سوم مثال سوم درست دارید میدید ما فعلا داریم روی بحث چی کار میکنیم جناس جناس نیست اگر یک زمانی با قول خودمون این طور شد جناس و ناقص نیست ممکنه یک به قول خودمون شکل دیگری پیدا کنه موازنه بشه آه. و از قسم سج بشه اونم انواع و اقسام داره یه سو دیگه بشه ولی ما فعلا بحثمون توی جناس دو قسمه جناس تام جناس ناقص تام منه که در چهار تا چیز با هم یکی هستند ناقص اونیه که در یکی از اینها با هم فرق دارند یکی هم گفتیم که به شرط اینکه نوع حروف در یکیش باشه درست شد این مالی بید. نگاه کنید و قالت آلا و اما فلا تقهر و اما فلا تنهر اما یتیم فلا تقهر اما یتیم رو لا تقهر به قذب نرانه بهش بهر و غلبه نکن اما اینجا باید تحکیل ندهدی این صورت این کار رو نکن و اما سائل فلا تنهر سائل و کسی که دست دراز کردن چیزی می خاطر هم لا تنهر به خشونت باش برخورد نکن رد نکن در این صورت این دو تا آیه اولا نگاه کنید الان اینجا ممکنه که یه چیزی هم بگم که این رو یاد بگیرید آیا ممکنه است محسنات لفظیه معنوی چند تاش توی عبارت خوشو بعد مثل وسایل زیبایی دیگه ممکنه که انگشتر داشته باشه که بند هم داشته باشه و هم داشته ممکنه یکیش باشه ممکنه چند تا بشه حالا اینجا مثلا لا تقهر با لا با هم بگید سج هم دارد حالا خواهیم خون اما جناس هم دارن لا تقهر با لا در یک حرف با هم فرق دارن نون و قاف نون و قاف باقی دیگه یکی یعنی در نوع حروف در یک حرف با هم فرق دارن نون و قاف بعد دیگه شکل حروف، تعداد حروف، ترتیب حروف یکیست چیست. میشه جناس ناقص در نوع حروف. دو رو ببینید. و قال ابن فارس ابن فارس یک عارف مصری است معاصر حافظ در نزد ماست ولی خب عرفان شعر های حافظ خیلی با این فاصله داره ابن فارس مثل همین حافظ در مصر بارگاهی دارد و به زیارت میدن. نگاه کنید با این هو ابو حفص عمر ابن علی بن قرشل اشعر المتصوفین در بین صوفینما ها شاه اثرین اصله من حماد اصلش از حمات بوده در این سوریه فیلی خودمون و مولد او قاهره ولی محل تولدش در قاهره بوده ولهو دیوان و شعر دیوان شعری هم داره و توفیه به مصر در مصر از دنیا رفته سند ست نعتن و سنتین و سلاسین 1632 و قبرهو معروفون یزار قبرش هم. اونجا مشکور و معروفه و مورد زیارت یعنی مورد بازدیده. بازدید بازدید کنندگاه خب چی میگه میگه حلا نهاک نهاک نهاک نها نحا جمع نهیست یعنی عقل نها فعل نها ینها حلا حرف از اون به سر موازی آمده توبیخ و تندیمه با مستقبل بیاد داره تحزیزه مثل که میگم حلا تک توبیخ. چرا نمی نویسی با تندیم. اما میگم حلا قرعته آخه چرا نخوندی تو نخوندی رفتی من تو رو توبیخ و تندیم پشیمان میکنم از این کار میگه حلا نهاک نهاک چرا نهی نکرد تو رو عقله چرا عقلت به تو نگفت مم. انلوم امرهن نهی کند تو را از ملامت کردن انسانی شخص منظور عاشق انسانی که لم یلفه غیر متنع امن به شقاق انسانی که این صفت داره لم یلفه یعنی لم یوجد دیده نشده، یافت نشده خیرم متنعمن به شغا به شغا متعلق به متنعمن دیده نشده مگر این که نعمت بدبختی به اداده شده متنعم به سختی و بدبختی بود یعنی آشب خودش در سختی و زحمت و بدبختی این تنها لطفی که بهش شده بدبختی بهش دادن آ، تا حالا دیده نشده این مگر که متنعم بوده به سختی و بدبختی چرا عقل تو تو رو نه نکرد که این آدم رو تو دیگه با قول خودمون ملامتش نکنی وگی خواهد تو سر چرا عاشق شدی چرا لطفی فلا یعنی خودش بیچاره بدبخت هست دیگه به گرفتاری افتاده تو اومدی ملامتش هم میکنی حلا که نهاک ان لا ممری ان ان لا ممری ان ان لا ممری لم یلفع داخل لم یلفع نایفای به امره این جمله لم یلفع صفتشه اونم رابط جمله غیر مفعول دومن غیر متنعمن بشه حال یعنی ان لا متنعمن بشه مگر بعد بدبختی بشه انوها جمع نویت با این دیگه و هیلعق و یلخا یعنی یوجت خب اینه گفتیم نهاکه با نهاکه در چی فقط فردارن؟ بگید در حرکت در حرکت با هم بعد. سه سه خمیشه چه پنج میشه و قالت الخنساه خنسای شاعره عرب من قصیدتن در قصیده این گفته قصیده ای که ترسی فیها، اخاها اخا ها سخرن در قصیده ای که مرسیه میکرده در اون قصیده برادر خودش سخر اینطور گفته اینال بکا هو هوه شفا هوه فصل یعنی شفای من فقط تو گریه است من فقط دوای دردم گریه کردنم شفا از چی؟ منال جوا جوا یعنی خورغتال اشک سوز عشق. این سوز عشقی که در وجود من به سخر هستش و الان کشته شده تنها شفا دهنده من از این سوزی که در منه سوز علاقهی که در منه تنها شفا عبارت است از گریه کرده است. جواب بینه این بینه حال است از برای جوان عشقی که بین الجوانه بین جوانه منه جوانه یعنی دنده ها جمع جانه هست یعنی دنده مش در حالی که در بین دنده های منه یعنی تو سینه منه از این عشقی که تو سوز سینه منه و دارم می سوزم ازش تنها شفای از این سوز عشق گریه کردن منه که بر او گریه کنم خب جوانه گفتیم جمع جانه هست یعنی ده. اگه شما نگاه کنیم ما دو نوع دنده داریم یه سری دنده هایی هستش که طرف سینه ماست که الان دستتون روش بذارید از جناق سینتون باز شده باز شد یه سری دنده ها هست که از پشت کمر از ستون فقرات اومده دنده پشت انسان دنده جلو اون دنده های پشت روش میگن ازلاق جمع زلعه این دنده های رو میگن جانه جمع جوانه عشق کجا تو سینه. لذا دنده های جلویی رو گفته. بینر جوانه. یعنی در سینه ی من. پایین نگاه کنید. الجوا الهرغتو و شدت الوجده. وجد یعنی علاقه. هرغت یعنی سوزش و شدت اش الجوانه الازلا علتی تحت تراعب. دنده هایی که در زیر تراحب سینه انسان و هیم امایل صدر و میرسد به سینه انسان از بحلو می آد می به سینه که از مایل زهر مثل ظلو از لا که جمع زنه و میاد میرسه می رسد به کمت ول جانه خب بین جوا و جوانه چی وجود داره؟ یکیان در ترتیب یکیان در شکل حرکات یکیان در نوع یکیان اما در تعداد یکی نیستند این یکی دو حرف زیاد داره حالا ممکنه یه موقع یه حرف زیاد داشته باشه حالا شد, شد. مثلا التفت و ساقو به ساق ال ربه کی و زنل مساق ساق با مساق این اولش یه دونه می اضافه ده. اولش آخرش حرفی اضافه شد. جواب و جوانه. اینم درست. شش، شش و قال تعالی خداوند تعالی فرموده حکایتا عن فرعون در حالی که حقایت از فرعون میکرده یخاطب خاطب و موسا که مورد خطاب قرار داده بود خب. موسا وقتی به کوه تور رفت بعد که برگشت دید مردم رو سامری گوسال پرست کرد قبل از رفتن هم هارون رو برادرش که رسول خدا بود گفتش که هارون اخلوف نید خلیفه من باش در اینها و اصلاح کن و کار بده. به دست اومد دید اینها کار خراب کردن گسال پرست شده خیلی عصبانی شد با حارون یه مزداری برخورد تون کرد حارون هم برگشت بهش گفت یبن اهمه ای پسر مادرم یعنی برادرم لا تأخذ به لحیتی ولا به سر و جله منو نگیر سر و ریش منو نگیر منو به قول خودمون دور معاشو گرفته بودین میکشیده. تو چرا اینطوری کردی چرا اینطور کار این کارو نکن چرا چون گفته خشیت و انت قولا تا بین بنی اسرائیل گفت القوم است از گفت گفتم تو نبودی این قوم منو ضعیف یافتن هر کوشش نکردن بعدم خشید و ترسیدم اگه من با اینها برخورد کنم خشید و انتقول فرلخت بین بنی اسرائیل تو بیایی بگی چرا این کارو کردی چرا با اینها برخورد کردی تفرقه انداختی بین بنی اسرائیل وای میستادی تا خودم بیام قضیه رو حل کنم من ترسیدم از اینکه این کار بر عهده من نباشه و این کار رو نکرد ایشون اومده گفته بین بین و بنی بین بین و بنی این دوتا با هم جناس ناقص دارن بین با بنی میگه که فقط در جابجایی حروف با هم فهم دارن در صورت که نیست غیر از جابجایی حروف درست شد که یا و نون جاشون عوض شده حرکت هم تغییر کرده بین وسطش ساکنه اما بنی اونم می‌بینید وسطش کسره داره قبل از یا این پس مثال برای جناس ناقصی که ایشون زده مثال نیست بین بین و بنی جناس ناقص وجود نداره چرا چون در یک چیز از اون تعداد چهار تا چیز با هم مختلف نشدن بلکه در دو تاست هم در شکل حرف و هم در بگید ترتیبه اما اگه مثال می زد به این مثلا می گفت حسام و علیان حسام یعنی سیف علی و علی علی السلام مثلا اینجوری می گفت حسام و علیان فتحون ل اولیایی فتحون یعنی چی؟ یعنی شمشیر امیرالمؤمنین فتح و پیروزیست برای دوستانش حسام علیه فتحون لأولیای و حتفون حد حتف با هجیمی حتف یعنی مرگ و حتفون لعدایی و حتفون بگو لعدایی و مرگ است برای دشمنانش شمشیر امیر پیروزی برای دوستان و مرگ و عذاب است برای دشمنان چون خطف و فتح جناس ناغذ دارند خیلی هم راحت شما دونستید فتح یعنی پیروزی خطف یعنی مرگ حسام و علیین سیف و علیین فتحون اولیایی و حتفون لأعدائی مثالشون سعیه نبود بحث و بخونم دیگه چیزی نداره تعمل الامثلت از و تجد بی کل مثال این, این تو جانس و اهداف ما الاخدا و تو شاکلها فی اللفظ ما اختلاف فی معنا و ایراد الکلاملا هازل و چوسم ما جناس ففی المثال الول من اتای فتر ال اولا تجد انه لفظه از ساعت مکررون مرته و انه معناهو مرتن یوم القیامه و مرتن احد ساعت زمانیت این احد ساعت زمانیته آدم به نظرش میاد یعنی یکی از ساعت‌های زمانی این ساعت یعنی آنات، لحظات نه منظور یکی از ساعت‌های زمانی که 24 ساعت ما داریم اون نیستا، یکی از آنات و وقت‌های زمان یعنی یه لحظه و فی ثانی ترا یحیا مکررا مع اختلاف معنا و اختلاف کل کلمتین فی معنا الا نه مع اتفاقه ما فی نوع الحروف و شکلها و عددها و ترتیبا و لسان ما جناسان تام و هزار کل کلمتین متجانستین فالفائدت فالطاعفت الثانی در گروه دوبام رعیت انهما اختلفت و فی رکن من ارکان الوفاق الاربعت المتقدمت در یک رکن از اون چهارتا رکن فرق دارن برای همه ما بنی و بین رو گفتیم این درستیست مثل تقهر و تنها نهاک و نهاک الجوا و الجوانه و فتح و حد چونم نساستم الان تردیب الامثلت و یوسم ما مابنگ در کل کلمت های نهونا من تجان و سن جناسن غیرتام به میگن میگم جناس غیرتام یا ناقص ول جناس حالا نگاه کنید اصلا جناس خوبه بده ما که گفتیم جزا محسناته بگید لفظی است و همه بشر در طول تاریخ هرکی هر کینای رو خونده خوشوش اومده همه اینا خوشونه تو فارسی هم همینه آن یکی شیر است اندر بادیه. این یکی شیر است اندر وادیه مولانا میگه همه کیف میکنن شیر و شیر وادیه و بادیه یکی شیر است خوراکی بادیه هم. یعنی کاسه یکی شیر است بیابون بادیه بیابون شیران شیر درند آن یکی شیر است اندر بادیه. این یکی شیر است اندر بادیه. آن یکی شیر است آدم میخورد این یکی شیر است آدم میخورد یکی شیریه یک که آدم را میخوره یک کم شیریه که آدم میخوره. درست شو میگه ول جناسیم از همه کسیرن من اهل الادم غیر و محبوب اما بعضی از آدم ها جناس چیز خوب نیست واسه چی تو کلا؟ ما حرف میزنیم مردم بفهمد بعد به قول خودمون حالا اومدیم دوتا کله ما آوردیم یه شکل دوتا معنا داره یاری گیج میشه. جناس خوب نیست. تو شو قرص پیام رسون باله جناس با وجود درینه و اینا مطرح کیف میکنه وقتی بجو میبینه ام با وجود فنج عجیب چی معنای قشنگی بتاره می شعر مولانا چقدر قشنگونو فهمید کیف میکنه. بله اگر تو میخوای به یه بچه صحبت کنی یا به یه نفری که کیج ویج میخواد صحبت کنی درست خود جناس آوردن قرینه هم بذاری نمیدونم اصلا از دایره مختص حال بیرونه ولی اگر جایی هستش که اختزای حال طرف میتونه این مطلب رو بگیره شما میگی بله جناس خیلی خوبه بل جناسی مذهب کسی من اهل العدب قیل و معمول لعنه هو یادیه لد تحقید میگه جناس باعث میشه کلام خوب فهمیده نشه تحقید معنوی پیدا میکنه این طرف تو معنا پیر میکنه و یهول و بین البلیغ و انطلاق اینان هیفی مزمار نال بعد میگه جناس مانع میشه بین بل و رحابودن انانش یعنی افسار اون سخن، دیگه دست بلیغ نیست اگه میخواد جناس بگه هکی گیر میکنه باید بگرده دون بله ما تو جناس ما تو جناس ما دنبال جناس نمیدویم ما حرفمونو میزنیم بلیغ رو میزنه جناس خودش میاد. تو نباید بیاردی این گفته تغییر میاره گفتیم خب اگه جایی باشه بیاره ما نمیخوایمشون جاییه که زیبایی میاره و تحقید هم نیست بعد میگی که باعث میشه که بلیغ زبونش بسته بمونه بله اگر بلیغ زبونش بسته میشه اگر دنبال جناس بوده خب پی خود میکنه نه دنبالش ولی نه بلیقی هست که خودش حرف که میزنه اصلا جناس میاد تو زبانش با قراره و مطالب کنیم درست کارش اللهم علم مگر خدا بیداد آدم برسیم تو اللهم إلا ما جاء و اون مقدار از جناس که خودش بیاد بدون قصد و سمه و سمه بهی عطب من غیر تکلف و طبع انسانی هم اون رو بیاره بدون تکلف یعنی منظور نذنم جناز درست کن خودش میاد اینقدر من سخن گفتم مسلط به سخن هستم خودش میاد از اون طرف هم آه قصد من جناس کفتن نیست تغییدم ایجاد نمیکنه مخاطب هم می اونجا کنیجا جناس سیباست عشقی نیست درست خب اولی تموم شد یک یک دیده صبر کنید یکم از کنید تا من دوباری رو دو برای بریم سر دومی. دومیش اقتباسه. اقتباس اقتباس یعنی گرفت. اما اقتباس از چی گرفته شده کردنش از قبس. قبس چیه؟ حتما دیدید شما اگر مثلا یک جایی هیزومی دارید مثلا اجاق درست کردید هیزوم دارید کبریت ندارید شما کبریت ندارید نبید روشنش کنید این اجاق رو شما می‌رید از اون اجاق دیگه یکی که آتیش بر میدارید میارید این اجاق خودتون روشن میکن ایناش میان قبس تو تو قرانم اومده کلمش پس کسی که اقتباس میکنه یعنی در واقع میره از یه جایی یه جزوه شعله ای رو میاره کار خودشو بگید روشن میکنه نه نه تضمین یه چیز اقتباس یه چیزه, چیزه. فعلا ما اخت... اونو که میگیم این که نعیمده همه رو بگه ما گفتیم که ایشون از سی تا چند تا گفته ده تا شو. از ده تای نفذی ست تا شو گفته فیلن اختباس رو دارید میگوی شما اختباس رو دارید یاد میگیرید درست شد تزمین یه چیز دیگه است مشابه این هست اما یه چیز دیگه است اختباس پس لغت قبض رو فهمیده چی؟ دوشو. اقتباس فهمیدیم اما اقتباس چیست اولا اقتباس در عربیه تو فارسی نمیشه اقتباس کرد یعنی با این که ما میگیم فارسی اقتباس نمیشه اقتباس چیه این که گوینده نویسنده در کلام خودش از قرآن یا حدیث معروف حدیث شریف تکهای رو بیاره از قرآن ببینید قرآن گفته یا حدیث شریف یعنی حدیث پیامبر اسلام یه تکهای رو بیاره نام هم نبره نام هم نبره یه لحظه. نام هم نبره که بگه قال الله تعالی یا قال الرسول شو؟ یه تکه از کلام خداوند یا رسول خدا رو بیاره نام هم نبره بیاره تو کلام خودش استفاده کنه. شما متوجه میشید که این چون حدیث مشهور قرآنم هم که آیاتش مشهوره میفهمید که این قرآن حدیثه در لابلای سخن او گذاشته شده ممکنه تو قرآن مناش یه چیزی باشه آه اینجا یه چیز دیگه استفاده شده باشه ولی آمده کلام خودشون کلام رسول خدا رو یه جوری جا کرده در بین کلام خودش و نگفتم به ما که این کلام رسول خودش ما موقع که میخونیم فکر میگویم مالونه بعد که دقت میکنیم میفهمیم قرآن هست و حدیثه بعد پی بریم این چقدر آدم مسلطی بوده که اومده کلام ما قبل و ما بعد و اینا از خودش این کلام وسط هم به خودمون کلام خداوند و کلام نبی که عقصه من نتقه به زاد هستش وسیحترینه، در اومده گذاشته کنار اینا ما یه مقدار با زحمت فهمیدیم یه مقدار بگید با زحمت فهمیدیم مثل این میمونه یه نفری میخواد نشون بده که مثلا تلاساز خیلی خوبیه حالا نمونه دیگه تلاساز خیلی خوبیه فرض کنید بهترین جواهرسازها ها مثلا ایتالیایی باشند تو ایتالیا بهترین جواهرساز ها باشند مثلا حالا مثال میکرد نمیدونی با که توی این زاویه تخصص ندارید یه نفر میاد چند تا مثلا علنگو که خودش درست کرده این ها رو میذارد این ور یه رو هم مثلا ایتالیایی شو میذاره اون بحثت شما در وحنه اول که نبا میکنیم همه رو یه تیپ یه جور بعد دقت که میکنیم اون ساخت فلان کسی که بهترین جواهرساز ایتالیاست بگه اوه، ای چقدر اون هم بهم که این کارو کرد درست شو اینو بشم بگنه اقتباس اقتباس یکی از خصوصیاتی که اختباس داره اینه که اولا نام برده نشه از خدا و رسول دوم اینکه اون کلام خدا و رسول در جایی که لایق نیست به کار برده نشه یعنی مثلا نیاد تو جوکو و اذل و تنز و نمیدونم از این جور چیزها به کار بره که شعن کلام الهی و شعن کلام رسول بیاد تو این دو تا شعر حالا اگه دانستید نگاه کنید اختیار رو. خب این چرا گفتیم تو فارسی ممکن نیست اونو خب فارسی این اون فارسی می نمیسته. اون اونور فارسی مینیویس حدیث و آیه قرآن هم عربی اگه اون وسط بیاد خب معلوم میشه دیگه درست شد؟ ولی تو عربی نه این ور کلام عربی اون ور کلام عربی وسطش حدیثی آورده یا آیه ای و نگفته هم ما دقت کردیم فهمیدیم اقباص تزمین و نصر در ضمن نصر او شعر یا در ضمن شعر هم در نصر این یعنی تزمین نصر و شعر که مزافن شه مفول اوله یعنی فرار دادن در نصر یا شعرشیاند من قرآن چیزی از قرآن همین کرد من قرآنترین اول حدیث شریف یا حدیث پییان بر گرام است حالا اونها چون میگه اول حدیث شریف اونا فقط پیانبر رو میدونن ما اگر اختباس رو داشته باشیم از امیر و هم مثلا نحضر و معصومین خودمون هم داریم پیانبر و معصوم من غیره این شرطشه من غیر دلالتون علا انلهو من حب. بدون اینکه بگر بگه قال الله تعالی یا قال الرسول من غیر جلالت اعلی ان نجوم دلیل اون باش مطلب دوم رو نگفته من غیر ده. و من غیر استعمال این موزه لایلیق و بدون این که استعمال کنه در جایی که شایسته نیست جمله‌ای قرآن رو در رتبه طنز و اون وسط قرار داده تو این اختباس غلط است اینجا یه تفسره میزنه توی یجوز میگه و, المقتبس، و یجوز ان یغیر فیل اثر مختبسه فیل اثره ان مختبس ان مختبسو قلیل هم و یجوز ان یغیر فیل اثر جایز اون کسی که اینو میاره در اون اثر یعنی اون چیزی که گرفته از قرآن یا حدیث اون المقتبس، اون اقتباس کننده انیگو غیره یه مقدار کم نه درست شده نه مثلا فرض بفرمایید که سیغه به سیغه قایبه اون اومده مثلا سیغه رو مخاطب کرد زمیر بوده برداشته اسم ظاهر گذاشته میگه اگر یه ذره تون تو اثر مقتبس یه مقتبس تو اون اثری که اقتباس میشه مقتبس اقتباس کننده تاثیر و تغییر بدش کنه اونم مثل این که علنگوها رو چیده علنگوهای خودش رو با اون علنگوی ساخت جواهر ساز ایتالیایی یه موقع هست خودمون علنگوی اصل ایتالیایی شو گذاشته این خب میشه اصله خود. یه موقع میاد اون تالیایاری یه ذره توش با خودمون صحام میزنه و از و یه ذره تغییر میده اونا که با مال خودش همه کاملی پیدا کنه هم میگه اشکال نداره درست شد یا نه اشکالی توش نیست و یه جوز انیو غیره فل اثر یعنی فل اثر یعنی این اثری که آیست یا حدیثه ان یغیر المقتبس فایل یغیر است قلیلا من تغییر به دیگه مقدار دیگه مشخص شد بلد شدیم حالا دیگه نمونه بخونیم و شما یاد بگید نگاه کنید من امثلتون و قال عبد المؤمن الاصفهانی آقای عبد المؤمن اسفهانی اسفهانی بوده قد زیگه بزرگانه اگر ایرانی ها نبودن اما عربی اثری ازش خود اینها همین مقداری که از قرآن میفهمیدن بود الان میفهمن نمیفهمیدن یواح کنی چی میگه عدیب مشهور متصففون ادیب مشهور و دربیش بیش مستقی کده و لهو کتابون یدعا اطباق از کتابی داره اسمش بوده اطباق از رتبه و الان معت مقاله توش صد تا مقاله رو بیان کرده آدزبه ها از زمخشری مقابله کرده تو باهای زمخشری برو والا ببین چی میگه میگه لا تقرن نک من از ظلمت کثرت اون و, و انصار لا تقرن نک نفری بود تو را من از زلمه از این زالمان، زلمه جمع زالم، نفری باد تو از این زالمان چه چیز؟ کسر جلوش، یعنی کسر تو جلوش هم، انسار یعنی انصر هم، نفری تو رو, ای تو رو از این زالمان زیادی لشکریانشونو یاری آورش. مبادی موقع اینها لشکریانشونو زیاده یاری زیاده زیادی تو رو فریب بده. این بوده. اون نشگر و دار دسته ظالمین رو نخور بعد میگه این نما نواخر هم دیومن تشخص و فیهر اپسار الان با آدم فکر میکنه یه داره با من انسار اپسار این نما الان توی اینجا هم برمیگرده به زلمه این جمله انما نما نواخر هم استینوف بیانی زیرا ما اونها رو تأخیر مندازیم عذاب اینها رو به تاخیر می دازیم لیومن برا روزی تشخص و فیهل افسار صفتش اینه تشخص یعنی خیره می برای روزی که خیره میشه در اون چشم هاشون ما اونها رو نگه داشتیم روزی که چشمشون از ترس خیره میشه. اون رو سه سابشون رو برسیم انما رو هم لیومن تشخص و فیهل افسار از کسرت ل... این لشکریان ظالمین شما به ترسید گولشون رو بخوریم. ما اینان الان گوشمالی نمیدیم نگرشون داشتیم یه روزی گوشمالیشون بدیم که چشمشون از ترس خیره بشه از حدقه بزنه بیم. آدم باید دیر خیلی این من یه جایی شنیده بودم این نما نواخره قرآنه اون آی قرآن توش این نما نواخره هم یعنی خدا هم یعنی کفار و منافقین دعای خدا نیومن تشخص و فیه افسار یعنی روز قیامت یعنی ما تو این دنیا حساب اینها رو فیلن نمیرسیم نگرشون بداریم تا روز قیامت پوستشون رو بکنیم چشمشون خیلیم اون در مورد قیامت هی. اینجا در مورد چیز دیگه اما اومده گذاشته کنار کلام آیه قرآن پایین میگه یوغال و شکل هست و سروح اضافت هست عینه و جعله جعل لا جعله لایترف جعلی از اول شروع یعنی شروع کنه که پلک نزنه زمانی که پلک چشمشو باز کنه دوتا چشمشو تو خیره و پلک هم نزنه که من گفتم خیره نگاه کن. خب بریم سر دومی و بال ابن سنائل مرک ابن سنائل مرک هو الگازی از سعید عبت الله کان من الرعسا النبلاء از بزرگان و شریفان بوده و کان واسطه ال العقد میجالس شعرا مصر واسطه اقد یعنی اون مهره وسط گردن بند بوده در مصر بین شعرا آخه گردن بند ها رو قدیم از مهره ها درست می کردن. این مهره ها را از ریز از بالا دو طرف می ریز یه ذره درش دروش، دروش، دروش. می میآمد تا پایین موقعی که می رسید اون پایین پایین که میافتاد جلوی سینه اون شاه مهرش بود اون روش باید واسط اون مهره کلافت، اون مهره اصلی درست شد شاه مهره درست شد این مهره ها رو از ریز شروع می شد مثلا فرض کنید سی تا این ورمون سی تا اومد اون بالایی ریز بود بعدیه یکم کم یکم درش کم درش یکم کم. می آمد تا روی سینه اون نقطه آخر که پایین پایین بود اون نقطه مرکزی این ورسی و دو تا مثلا این ورم سی و تا اون سی و که پایین افتاده بود یک مهره بزرگون شاه مهره بود میگه این شاه مهره با قول خودمون گردنبند مجالس بود یعنی انگار مجالس افرادی که میشه ریز تا درشت بود این بود که گردنبند بقول با قول خودمون جلوش بود این شاه مهره شد واسه تطعیق این مجالس شعره به مصر و هوه اولو من استک سره و اون اولین است که زیاده روی کرده منر موشهات موشهات هم اتمن بیده مثل شعر نو که بیشتر در اندلس و اینها سروده می شد و اجادفی ها منر مشارغه و کسیه که در موشهات خیلی خوب شعر گفته و از مشرقی نتو موشهات منشهش و اینها در اندلس و در مقره اندلس اسپانیاس دیگه در اون طرف این طرفی ها تقریبا وقول خودمون کپی برداری کردم میگه اولا اینکه خود از این محتوا برامد مشارقه یعنی مشربی ها بلحو خب دیوان و شعرن و توفیه بالقاهره سند 608 ست نعتن و سماع خوب ببینیم چی گفته میگه رحدو رفتند بلست موسا النا اندارهم میگه کوچ کردن دو رفتن رحلو جمله خبریه برای اظهار تحسره یعنی رفتن یاران رحلو بلست و مصائلن اندرهم من از منظری که اونها رفتن سوال نمیکنم یه چه دو عاشقی هستی که میگه رفتن یاران و نمیخوام بدونم کجا رفتن اونها رفتن و آه و ناله و گریه میگه رفتن میگه ولفلست تو مسائلن پس من سوال نمیکنم از این و اون از جایی که رفتن چرا میگه احنا اون نفسی علا آثار زیرا من باخون یعنی محلکان زیرا من حلاک میکنم خودم رو علا آثارهم بر همین جایی که از این ها موند من اصلا از اینجا جا دقیق می کنم می دیگه اصلا نمی رسَم به اینکه سوال کنم کجا رفتن برام فایده ای بگیر نداره درفت چبر ان ابخ اون نفس علی الله آیه قرآن خسش که فلع الک باخ اون نفسک علی آثاره. اینجا داره باخ اون نفسک علی آثار, باخ اون نفس آثار اون. آیه قرآن این نفسک رو به پیغمبر میگه میگه این ایمان نمیارن لعله که باخه اون نفسه که علا آثاره تو میخوای خودت رو بل اعمال و رفتار اینها که ایمان نمیارن آثار اینها حلاب کنی تو میخوای خودت رو به کشتم بدی که اینا ایمان بیارن اون آی قرآن اینجا اومده آثاره هم شده اطلال گفته معشوق با اطرافیان رفتن من الان در آثار با بیمانده از اینها نشستم درست شد و سوالم نمی کنم کجا رفتند این با آخوان استیلاف بریانی آخو جایه سوال نمی میگه چون من اصلا امید به دیدن اون که کجا رفتن رو ندارم من حلاک خواهم کرد خودم رو بر آثار این من می میرم اینجا دیگه لزومی نداره که بخواد سوال کنم خب آیه رو یه مقدار فهمید اون آیه هستش که با آخوان نفس ها کرده این دوتا آیه بود حالا نگاه کنید و قال ابو جعفر الاندلسی ابو جعفر نل اندلسی این آقای ابو جعفر اندلسی گفته نگاه کنید تا این چی میگه بخه نفسهو یعنی قتلها قمن اونو از قم و قصه با قم و قصه کشت دقیق عدیب قوی یا ادراک عدیبیست فیل ادراک بالا داره اجادفی فن نی النظم نظم و ان نصف هم فن نظم رو خوب می دونسته هم نصفه. و جرت لهو محل سان الدین ابن الخطیب مباحثات و مراسلات بین او و بین آقای ابن الخطیب مباحثات و مراسلات زیادی بوده و له دیوان و شعرن، دیوان شعر داره و تو گفت یا نح و سند و مرده سال 172 صدر نعتن و سنتین و سامین خب اینم مال این آقای ابو جعفر حندوسی این چی میگه میگه لا تو عاد الناس ی اوتان لا تو عاد یعنی دشمنی نکن ان ناس با مردمان اوان هم تو سرزمین اونها توی تو کشور اونها تو محل اونها میگه با مردمان یه محله تو محلشون در نیفت لا تو آدم ناسی اوانه چرا علت می؟ قما یور آ غری گبتای ق یور ها مقل این ما بهش هم مای کافه یعنی درتن میشه؟ یعنی فایده نمیکواد اون یعنی لا یور آ، درست شو دلما یُرآ غریب الوطن میگه نادرتا بشه یک درصد هم نمیشه که غریب الوطن رعایت بشه کسی که تو وطن خودش نیست پر کنه کسی رعایتش نمیکنه معمولا غریب مورد عنایت نیست میگه با مردم در نیفت توی سرزمین خودشون زیرا کم میشه که کسی قریب باشد و مورد انایت باشه. و ازا ما شئت عیشن بین هم ازا ما ما بعد از ازا زاید هست. و اگر دوست داری زندگی کنی بین اونها توی جایی قریبی میخواه اونجا بمونی آه درست شد؟ اونجا نیست میخواهی ازا ما اشت عیشن بین هم ازا ما شئت عیشن بین هم. اگر میخوای زندگی کنی بین اونها خالق ناسا به خلقن حسنی معاشرت کن با مردم با اخلاق نیک اگه میخوایی بین اونها فریب هستی و زندگی کنی معاشرت کن با اخلاق خوب خب این خالق ناساب به خلقن حسنی حدیث پیامبر حدیث مشغول است که گفته مواشرت کنید با مردم با اخلاق خوب این اومده این رو به عنوان یه مصرا استفاده کرد و نگفته هم با در رسول صلی اللہ علیه و ما فکر می‌کنی با من جزای شرط ازای خودش در صورت که این حدیث البس یول ا قریب یعنی یول به الاحسان یعنی مردم به خوبی باش نماب کنه به دید خوب قایم میگه عل عباراتان بین العقواس عبارت هایی که بین قوسه بین قرانتزه فلم سالین در دوم سال اول معخوزتان منر قرآن ارکرم از قرآن کریم ولی عبارت که بین قوسین فلم سالس منر حدیث شریف از حدیث پیامبر باده و قد زم منر شاعر کاتب تو مورد اول شاهد تو دوم و سوم قرار داده کلامه ها زهن آثار قرار داده در کلام خودش این آثار رو ها زهن آثار شریفتر من غیر انیوسر لها و ان لها منر قرآن اول حدیث. اینا اینان آورده تو کلام خودش گذاشته بدون اینکه که بگه قرآن یا حدیث و قراز رو همین ها تزمین از قرضش از اینکه که اینا رو آورده گذاشته تو کلام خودش اینه انیستعیرم این قوتها قوتن اینا کلامهایی هن که در رو گوهرند. اینا رو که اصلا دارده پیش بدلی خودش گذاشته که بگه بدلی منو نگاه کنید چقدر استادان که با این اصلها بگید یه مشابهت دار قوت بگیر از و ان یک شفم من مهارتی و هم یک شفهن محارتهی و این که نشون بده مهارت خودش رو بی احکام سلح در محکم کردن ارتباط بین کلامی و کلام نزی احزه که بگید ببین چقدر این دوتا هم شکلند چقدر به هم دیگه شبیهند و پرده برداری کنه از مهارت خودش در محکم بودن ارتباط و علاقه بین کلام خودش و کلامی که گرفته آمرته گفته این که من درست کردم کاملا مشابه این هست این هم و ها زن نو یوسان ما اختباس ها. این نو بهش میگن اختباس و ازا تعملت و اگر تو دقت کنی رأیت ان المقتبس اگر تو دقت کنی میبینی شخص اختباس کننده قد یو غی رو دلیلن فیل آثار ها گورهی و وا درن و او آثاری که اقتباس میکنه تغییر میاره کلمه سالثانی مثل مثال دوم اذهل ایتو زیر آیه شریفین فلعلک باخ ونفسک علی آثار آیه میده فلعلک باخ ونفسک علی آثار اون نفسکه رو برداشت کرده چی بگید از اون قسمت باخ ونفسک علی آثار همین رو اقتباس کرده بعد نفسکه رو کرده چی نفسی علاوه باخه اون نفسی الا آثاره اقتباس رو هم برای شما بیان کردم دو تا از محسنات نفسی رو برای شما گفتم و محسن سوم عبارت است از سجع و اگر بخوام بخونمش حیف میشه و دیگه به قول خودمون نمیشه اینو جمع جورش کرد ان شاء الله جلسه بعد موفق و معید باشید در پناه خداوند و انشاءالله که براتون سودمند بود. و السلام علیکم و رحمت الله و بره.